قسم شیشون که این خب خیلی ابتلاع داره و در کلمات اصحاب ما نیامده استراحیست که بنده بذاشتم جرد فقی گاهی میشه یک روایت میاد در روایات ما اگر به لحاظ مطن لحظی شراح کنیم یک جور میفهمیم اگر زمیمش بکنیم به جرد فکری جوری دیگه میفهمیم این سوال اینه آیا این جرد فرحی تا چه حدیه اثر داریم؟ داری. الان ارزو کنم مثلا چند تا مثال ارزو کنم تا روشن باشه خدمت آقایم یه بحثی است در فروختن شراب خب معروف بین علماء اسلام بلکه اجماعی که فروش شراب جایز نیست سمن خرم سخت لیکن خب از اون برم مسیحی هاشون شراب رو میفروختن چون توی اهد زمین بود الان تو جمهوری اسلام خب بخرم بفروشم بین خودشون مانه ای نداره این بحث بود مثلا ترشی نهی کردم ابو حنیفه میگه شما شراب رو اگه بفروشین باصله اما شراب بدین به یک مسیحی بفروش پولش رو به شما بده اون اشغال نداره لكن خب هم در فقه ما و هم مشهور بیگ ادمان این هم باطله یعنی شما شراب رو بدین یک مسیحی بفروش و پولش رو به شما بده اون هم باصله که توضیحش هست بله یه فرعی بود این در مدینه بود که مالک مزرعه کرده بود و اون این بود که اگر شما شراب پول یک مذهبی مدیون هستین به یک نفر یک نفر مسیحی به شما مدیونه یعنی ذمهش به شما مشغوله بعضی وقت‌ها شما ازش 20000 تومان طلب دارین از یک نفر مسیحی جلو شما دینی شراب رو حدود 20000 تومان گرفت برای قرض شما به شما به شما داد مالک گفته اینجا درست بهتر بکنه یک مصسیحی اهل کتاب مدیون به شماست برای ابراه زلمه جلو شما شراب فروخت پول شراب رو به شما داد برای اادبراه زلمه اینجا گفتن اشکال نداره مال گفته دلیلشم کل صابم میگه چون پیغمبر از اهل زمه جزیه میگرد و اینا پولی که به عنوان جزیه میداده باید پول شراب هم بود پس اگر زمهش مشغول باشه البته در جزیه زمهش به دولت مشغوله در این مثال زمهش به شما مشغوله روشنش سر سرمسته میگه چون پیغمبر ابراع زمه کردن با پول شراب پس میشه با پول شراب ابراع زمه کرد غیرش دیگه جهاز نیست همونی که پیغمبر انجام دادن روشن شد ما حدود پنشیش رباید داریم که شاید همه شما معظمش هم سریع همین مسئله توش آمده خیلی هم عجیب و تحریف مسئله واحد اینقدر رواید بیاس شده از خواب تحجیب کرده در تمام اونها انرجلنه یک رجلی به کسی دیگه مدیون بود شراب رو فروح اداع ذهن کرده ما مفرمان اشترا دارم توی یه دیدان از خیلی به اهل زمت نشده یک دره توی تمام اونا اندار شده لذا اصحاب ما گیر کردن متحیص کنیم چهار رو کنیم چون معنیش اینه که اگر یک شیعه جلو شما شراب رو زمه شما رو پرگاه بگیم درسته اون قسم باطله گیر اصحاب در اینجا ما باشیم و ظاهر ربایات اطلاح داره و اصحاب هم تا حتی برداشتیم قصد هم ستفا میدیم به این مادم روشن شد بنده اصحاب هسته اصلا نه. چون جد به فقهیش خصوص اهل کتاب بوده پس اطلاق مراد نیست ان رجلن یعنی این رجلن من اهل کتاب پس دیگه به مشکل برخور نگردیم اونی که اصلا... که اطلاق مرام داریم تقرید مرامی هم داریم, داریم. نه جذب فقیه برقامی نیست چون ما فهمیدیم جذب فقیه این بوده این احتمال نبوده که یک مسلمان شراب به سوش عدا ازدمه بکنه درگرد میکنی این اصلا در بین هامه قطعا باطلی بوده چون برای مسلمان قطعا جایز نبوده شراب درگرده این چی میخوام بگم؟ پس و نفس ما مطلقه ت شوشی شده همه هم مطقیدم از ا جایاییبه نه واقعا من متلیرم انصاباً لولا این خره این هم عرض کردم ما گشت این تا تو مدرنانول کبر های مالک پیدا کرده و توی فتاب توی موط ها نبود توی مدرن توول کبر مالک این خ ع این خ آمده وکن با عنوان اهل کتاب تا استدلش هم نوشته چون پیغمبر جزیه جدیه می گیره و اونا از پول شراب می داده پس عدار زمه با پول شرابش کار نداره طبعا بلید چی داره احل کتاب اما روایات ما مطلقه در روایات ما مطلق وارد شده این همون نقطه است که ما میگیم مراز جدی ان رجلن یعنی رجلن من اهل کتاب این ای بحثه که آیا با وجود جبه فقیر میتونید کهید بزنین؟ یعنی مراد جدی رو با مراد استعمالی فرم بگذارین این یک مثال که انشاءالا واضح بود از کردن مسئله بسیار معروفی از در که مثلا زنها خانونها بعد از نقا از حیث و قبل الاختصال یجوز و وفیه ها املاب خیلی مسئله هر در جبر فقیه خوده هر سن در جبر یا عامه اصلا روایت ندارن رسول الله اصولا از کردم ای که در قرآن کریم آمده به اصطلاح در باب قس قسل زن که مداری قسل زن به خاطر نماز زن بعد از حیز به خاطر نماز قسل می کنه. این قسل زن به خاطر نماز اصولاً در سنته اصولاً مسائل این که زن نماز نکنه یا روز نگیره اینها کلن تو سنت آمده تو آیات کتابی فقط مربوط به مسئله به حساب مباشرت جنسی است مسئله قسل در سنت پیغمبر فرمود اضاعق بلت الحیزه ببینید حیزه رو به فتح حاق بکنه حیزه نکنید حیزه پارچه بوده که زن در اگام حیزه با خودش برمیده شده هم به ایچیز خود اون حالتی که پیدا میشه فدع صلاحات و اضاعتورت سخت سلی و صلی اما در قرآن نزده قسل حیز در از اوها بی نکتره ارسا قسل تو قرآن نیامده برای نماز بهلت میگونه در قران فءاض تطهر نه اومده. فاعتذر النساء في المحیض حتى یطهرن یا حتى یظهرن. بعداً فءاض تطهرن فرتوهم من حیص عمل کومند. این بوده که این تطهرنه به معنای نقاء یا, یا لا اقل معنای شستن موضع یا به معنای اختسال. چون اختسال در قران نمیاد. این ترک مسئله روایت هم اهل سنت ندارن نخوام جبر فقی رو خدم. اون وقت فقاهای اهل سنت تو این مسئله اختلاف کردن منشه اختلاف در جبر فقی این بوده که آیا استطحاب در شبهات حکمیه جاری میشه یا نمیشه چون من توضیح این چه چند بار عرض کردم یکی از مواردی که قطعاً در شریعت مقدس اسلام آمده در مسئله وضو چون اونها اهل سنت هم از پیغمبر دارن ما هم داریم در این جرح مشترکیم که اگر کسی وضو داشت شک کرد یا مثلا حدثی از او سازده نشد یا نه بناه بر یقین بذاره این در باب وضو روشن شد بعد از احده سائره از زمان اهل صحابه به ده روشنم بحثی که مطرح شد استصحاب در شباهات و حکمیه اون دقیق رو استصحاب در شباهات حکمیه یعنی در حکم کلی اگر شک کردیم مثل همینجا مثل هم مثال دیگه آبی بوده بیشتر از بوده نجس بوده کون تو شیخیم قرمس شده نجس. دو روز موند این رنگ پرید شد سفید آیا پاکی یا زالت تغییر رو منقلال نسته گفته شده اضافه اقل ما قرد کرده یا مثلا اختضار میکنه پاکه از اون استصحاب استثاب اختضار میکنه نجیسته اون قبلن که ندیه صبح رو نجیسته روایت هم نداره پس این درکت بکنید ما بحثی در اصول محرح شد تدویجن که دیگه رسمی شد در اصول استثاب و توضیحات میشه ان در بحث اصحاب اخیره عرض کنم بعد از این ان ان گفت این بحث مطرح شد که آیا استصحاب رو ممکنه حکم با استصحاب ثابت بکنه یا نه خب ایده از اهل سنت گفتن بله میشه ایده از اهل سنت گفتن نمیشه قدمايي از اصحاب ما هم ایده کمی گفتن میشه اما بعد ها از زمان علامه رزه ایده زیادتری گفتن میشه تا اخباری ها اخباری هایی شیعه به شدت چستیدن که نمیشه استثاب در شماد حکمیه نمیشه چند بار در حمی مجلس ارض کردم یکی از نقاط اساسی اختلاف اخباری ها با اصولی ها استثاب در شماد حکمیه هست حکمیه کلیه اخباری ها اصرار که نمیشه بعد از باز اون دعویی که مطرح شده مرمون وگیده و بهباهانی و دیگران باز اصولی ها، حتی شیخ هنساری یا میره ناینی، محوم آی ناینی و محوم آی آزی دیگران اینا مشهور قایش این که میشه استحصاب در شما تحکمیه جاری میشه الا آی خویی ایش این ها میگن مثل اخواری ها همیسته تقریبشون با اخواری ها فرم کن و نتیجه داره خیلی، میدونین در رسائل شیخ و بعد از شیخ ناینی دیگران ده پونزه سا روایت برای استثاب نبر کردن من چند دفعه ارز کردم ما یک دانه روایت واحده هم در استثاب در شبات حکومه نداریم لذا بحث استثاب رو در اصول روی قاعده رفتن روی سیاق و اغلایی رفتن جلو تا ایز روشن شد خب جلد فرهی هم روشن شد. ما در روایات ما این بحث کبروی که آیا استصحاب در ثبات حکمی جاری میشه نداریم و رضا هم گفتیم ادیه از اصولیم قایدن که میشه مثلا اون نایگه مثلا همون چه قایدن که استصحاب جاری میشه سوالی که اینجا مطرحه اینه ما در اون حکم جزئی روایت داریم چار پنج, پنج در آز پنشیف داریم اونم عرض کردم چند بار در جا از اجرایی بینه که نداره مثلا بگید که زن بعد از نقا و قبل الاختصال لایجوز تمام روالات بگه یه جوز و بسیم بعد النقا و قبل الاختصال نقطه فندی امروز این بود و بحث بکنیم از این روایت چند تا مطلب در میاریم؟ وقتی امام میفرماید بعد النقا و قبل الاختصال یه جوز و ها فقط حکم فقیهی در میاریم این همین چیزی که الان علماء ما فرد دستور اینه که اگر جبه فقهی رو ملاحظه کنیم از این روایت دو تا مطلب دردنه اینه یکی یکی مسئله فقهی یکی این که استثاب در شما تو حکمه جاری نمیشه بلا شما که لاغل خیلی بانه دستش شما موضوع رو تفسیر کریم در اونجا با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 میگن چون موضوع واحده اونی که جمع میکنه خود زنه حکم اون حالتی که آمده به اون حالتی که نمیده سریع ناشیدی ولذا از کن شرارن برارن استثاب به یک معنی خیلی شبیه قیاسه نه اینکه به یک معنی خیلی بیشه خود قیاسه به یک معنی به لذا از کن در کتب اهل سنه و حتی در محاله کتب شیعه ما مثل کتب علامه فعل استثاب و قیاد استثاب رو با هم میگرم در استثاب مرادشون از باقای موضوع همینه این توضیحاتشه هست کرد اگر بزنو خواهیم خیلی از بحث کاریز میشن و همون توضیحات سابقه فضا پس اینا اینطور میگفتن اگر حکم آمد که زن ها لای جوز و بست بل هوه هزن فعتزل و نسائف محیزمی اتضال خورده به زن این زن نمیدونیم با صفت محیز بودن در حال محیز یه حالونوت یا یا خود زن یعنی به اعبار از این اخرانه میدونیم حیثیت تعلیدیست یا حیثیت تقیدیست فرقا بینه حیثیت تحیید و تعلیدیم شون رو, رو بشه هر جا اثر رد رو متحیف و حیثیت این میشه تقیدی هر جا اثر رفت رو متحیط میشه تعلیلی یعنی اون ساعت فعتذری و اصل فعتذری رفت روی زن بابت تقیدی. تقیدی. با بسته حیث میشه تغییری حیثیت تقییدی اگر حیثیت تقییدی شد به بالیشون که فرمانده این شد مورازی اینه اگر حیثیت تغییری شد الان که خون پاک شده زن با بسته حیث نیست اما اگر رفت روی زن مغیض و حیلت علت uruz این حکمه رفسو یزات زنجو به قتوا کردید شاعت ازل النساء اون مغیض علت کیفی نیست حیثیت تعلیلی است ن دیگه میگه اگر علت ما اونجا شک دارین باشه نباشه حیثیت رو تدریج مؤل ببینید نه شما اینطور نفرمایید شما هم رأیتون هر همیشه عرض کردم شما میگین عرف در احکام شرعی حیثیتا و تقلیدی می‌فهمه خیلی خوب شد ما عرض کردیم در احکام عقلی حیثیتا تعلیلی این جوابات کلی رو حفظ کنید در احکام عقلی حیثیتا تعلیلی در احکام شرعی حیثیتا تقلیدی است واقعه در قوانین حیثیتا تقلیدیه این در حقیقت اونا بخواستن چی بگن؟ اینطور بگن ما نمیدانیم حیثیت حیث تقییلیست یا تعلیلی اگر حیثیت تقییلی باشه اینجور میشه زن با وست حیث یهران واسی ها اگر حیثیت تعلیلی باشه اینطور میشه خود زن یهران واسی ها حیث سبب عروض این حکمه ما که ساکشی نمیدونیم تا وقتی که یقین بیدا بکنیم به خلا که یقین با استثار تصویر روشن شد پس در حقیقت البته آیه هاشک مخواهی میخواهی هیستیت تقییدیش بله اگه هیستیت تقییدیش روشن شد سر استثار چیه سر استثار اینه که مگه ما نمیدونیم بیدون آیه مبارکه من خیلی بلکم واضح فعتزلو این اصل ان نسا این موضوعه محیز این حیثیت هست. فعتزل و نسائه فلمحیز این فلمحیز هیسیت تقییدی ایسی و تقییدی هیسیت تقییدی یعنی چی؟ یعنی حیثیت و متحیص هر دو موضوع حفظ. این اسمش حیثیت تقییدی یعنی انسا و محیز موضوع حفظ. حیثیت تغییلی نیشی یعنی متحیص موضوع حکم حیثیت فقط علت اروز شد دیگه موضوع نیست موضوع ذات زنه بغض میکنی ذات این زن خب شب تقییدی دیگه اون استظهار شما شب شب شب مثل های واقعی بردی فرمایید اون استظهار شما شو. من قبول دارم مادر این حرف نه، دیگه خودش شما خود خود زن. مثلا من باب مثال در همون مثالی که صادران تو بحث مشتر ما خصوصیش کردین، در روایت داره که بنت زوکه ببین این همراهه ربیبه. درست؟ خودش دیگه بناته. لبایبه. سوال اینه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 الان که بنت داره زوجه نیست دقیق دقت بکنید آیا این زن برای دختر برای این شوهر اول حرام میادن اون نقطه فهمیش اینجاست اون نقطه فنی وقتی بگیم بنتو زوجه دقت بکنید آیا مراد زن با وقت زوجیت بنا؟ نه دخلتان نداره توی این که روائه که دخلتان نداره روائه به اینجا بینت زوجه روائه به قسم کن به قسم کن اشکال اون بحث اون نیست به قسم کنی چی مخوام اعرض بکنم الان <تصح> این زن زوجه که نیست طلاق شده شوهر اول آیا به این تو زوجه بردین سل رو میکنی آنه نکته فرمی اون زوجیت حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی یعنی اگر گفت زن با وست زوجیت دختر اون خب اینجا دختر اون هست اما با وست زوجیت نیست. اما اگر گفتی نه مراد از خود اینه هر زنی که زوجه شد دیگه ذات زن کار نداریم به وست زوجیت میاد رو ذات زن از ذات این زن اگر دختری متمند شد این هم حرامه نمیخواد وقت زوجیت باشه؟ به قسم کنید؟ ما دومبال وقت زوجیت نیستیم وقتی یک زنی زوج انسان شد در اینجا دختری لیکن نه بلحاظ وقت زوجیت، بلحاظ ذات خود زن سرزا شما چرا؟ راست ضرورت ازش بگیریم یه چیزی نمون دیگه. خود ذات زن که است؟ ذات زن، او خودش نداره. نداشته باشه زوجی شود یا نه. پس زوجی شد خب زوجی که شد، نه، زوجی که شد، شاره آمده از ذی که زوجی شده، نسل او رو برای این حرام کرده. صادقینی، صادق الله ما مثال میگیم علف. اما هیچ حکم خاصی نیست که فقط قانون نه در این متدولوژی خب اون بحث دیگه یعنی شاید فرض کن زوجیت در دخول ترجی نیست الان دیگه زوجی که نیست که یادم چی؟ جان بغض دخول وقتی سوال مولانا می که هم خود به عنوان زوجت و دخولی که به زوجه باشه حالا فرض کنیم یک ذره دخول اشتباهی شبهتن کرد اون نیست که با زوجه باشیم خب این الان زوجه نیست تصادفان همین مطلب روایت هم داره که تهرون برد تو تهرون همین مطلب این که به جمان گفتم خود این روایت داره راز و سریعه هم داره درست هم از تصویم برم نه در همون زنی که بعد شوهر می دختر یا شوهر بعدی پیدا البته ارز کردم من این روایت شما هم باید همون بکنید بر حیثیات تعلیلیه تعبدن و الا اصل اولی در احکام شرعی حیثیات تخلیبیه پس استثاب روشن شد نکته استثاب این سوال اون که حالا نکته اونه که من بحث من وارد بحث استثابون نکته اینه وقتی امام صادر که در قرن دو اومه و این بحث بین فوقه ها شده او دقیق بکنی یک فقیه میگه یه روم ها چون استثاب میکنم یک فقیل میگه لا یه روم ها چون استثاب جاری نمیشه برمیگریم به از آزال برای چون استثاب جاری نمیشه این جای بحثیش جای بحثش اینه وقتی امام صادق میفرماید یه دوز و وقتی ها دو تا مطلب رو بیان میکنه یا یکی اصحاب ما فرمزن یکی و اون خب من میخواب بگم جمعه تقیی موجب انعقاد ظهور میشه یعنی حتی مدلول لحظی درست میکنه نه مدلول سیاهی این دکتر نه فقط مثل اطلاق مدلول سیاهی باشه مدلول لحظی درست میکنه که امام میخواب بگمونه استثحاب وجهت نیست از شما اصلا در رساله کفایه اگه ذهنتون باشه از کرای این در بحث استثحاب نمونده چرا شما دیش مدرول فقهی فرمیدن؟ آیا جبل فقهی مواردی هم هست که من نگه به خوابی هم طول می کشه این مورد خیلی مثال واضح و روشنی رو هستم خدمتون آیا جبل فقهی تاثیر داره برای فهم مراد؟ به نظر بنده فرقه؟ یعنی به عبار از این اخرا. اگر ما در برن درگم بودیم تو کوفه بودیم یا تو مدینه به ما میگفتن امام صادق فرمود یکی و دو وقتی ها یعنی فرسون به یک فریح سنی در کوشه میگفتن یا در مدینه یا در شام اون فریح اینجور میفتنید که امام صادق قائل است استثاب در شباز حکمه جاری نمیشه مثلا کلام معنی این بود؟ الان فقه های ما این معنی رو نفهمیدن فقط حکم فقی رو فهمیده اصلا معنی این کلام اینه که استثاب در شما تو حکمیه جاری نمیشه با یک کلام دو تا حکمی در میاد یکی حکم فقهی یکی حکم اصولی اولا استظاهات میکنیم معنا رو سانیه این جزو مدلول لحظی شو جزو مدلول سیاقیه به ذهن ما میاد که اینها جزو مدلول لحظی باشه و حجت هم باشه شکل به شکل استثاب نه غیر از استفاده نیشه چیه؟ نقطه یکی مدلو لفظی قرار شدید نقطه اینه که همیشه به قول آقایون علت و معلول عین هم دیگه هستن دلیل و مدلول هم همینطوره یعنی این یک یکی ارتکاز است که فقیه وقتی میخواد فتوا بده اون دلیل همیشه نظرشه. مثلا میخواد فتوا بده قاعده علیلیت قبول داره تفقه اون قاعده یه چیز میگه قاعده علیلیت قبول نداره چیز دیگه میگه دقیق کردیم اینطور نیست که دلیل رو به نحوه استفسان بگیریم اصلا دلیل محت نظره وقتی یک سآل را شما میکنن شما در ذهب راست که استثاب حجت یک نتیجه میگیریم در ذهب راست استثاب حجت نیست نظر کنید که استثاب نتیجه دیگه میگیریم بحث من اینه که این از قبیل برای همین جداش کردن که این از قبیل استپتان نیست این از قبیل التفارت به خود مبناست یعنی تقیید وقتی یک فتبایی رو میده مثلا میدونه در این مسئله ادهی از علمان بین رو با تمسا کردن ادهی از علمان به رو با تمسا کردن این مطلب شعر فقیه همه آنشنات ولذا این کلام رو وقتی به تقیی میدن تا میگن امام صادق اینجور فرمودن یه جور زورتی یا میگه عجب از امام صادق هم استثاظا و جدی میدونن توزن چه زراره اگر اینا میشون بودن فکرس نمیم کنیم همینجور نمیدونن تو امام صادقه شما کنیم مثال غیر زراره میدونی زراره چون این معنا رو دیدونن سنیا خب علم امامونا رو نیستن که عدد به عطم واقع و اما در حالی که میدونید ممکن ارزش ببینید در حد امکان این امکان داره نمیخوام بگم امکان نداره. لكن عادتا ائمه علیهم السلام این جور جا که اهل سنت یه چیز میگن ایشون خلاف اونها رو میگن صاحب شرع و نسله غالبا بیان میکنه. غالبا بیان, بیان, بیان, بیان. یعنی مثلا میگن فقط جان رسول و هاولا لمیان ضرور الله کرم رسول الله لمیان مثلا هم از آقوستان نتر رسول الله پیغمبر فرمودی اجوز و بطیه ها لیکن اینا شد در زمان ما مصاده اده از احضاستان نده بگونستن یه هم و بطیه ها اده بگونستن یه و بطیه ها دلیل هم منحسن استثاب دقت بکنید دلیل هم منحسنن استثاب روشنه شد تضایی مسئله اگر امام صادق سا... این احتمال داره که امام صادق تمام اینو بیخود گفتن استصحاب مراجعه در این مطلب اهل تسوده مطلب داره میگه اهل واسه یا از امیرالمومنین ائمه عادتاً اون رو بیان میکنن عادتاً اینطوره وقتی بیان نشد عادتاً به این معانی به حجج فقهی اعتماد شده پس بنابراین بر این مسئله حجج فقهی خیلی کار داره من دو تا مثال زدم اما کاربردش تو فقه ما زیاده جایی روایت مطلقه باید مقید بفرمیم جایی روایت مقیده باید مطلق بفرمیم جایی روایت یک مطلب داره ما الان در واقع سلاح در حریر دقت بکنیم سلاح در حریر در لباس حریر اهل سنت این مثال میتونم شما وقتمون شد باید تموم بکنم احل سنت این مخلق دارن هیچ روایت از رسول الله ندارن سلاث در حید و گرده رو برساله اجتماع منه اگر کسی قایل به اجتماع بود مگم نماز درست کسی قایل به امتناع بود مگم نماز باطله مثلا ساعت در حید اینطوری به نهرسان اینه تو روایات اوائل ما هم ما نداریم لبس حرید هر پیلاهی بزید لبس حرید سلاث در حرید ما تو روایات امام رضا که در اواخر غرب دوم و اوائل غرب ثبومن اونجا داری هر اینه که اگر در این زمان آمد یک جبه فقهی شد خب دقیق میکنید پس امام رضا اضافه برای این که میفرماید نماز در هر جایز نیست میخوام بفرماید ما قائل به امتنا هستیم اجتماع اما نهیم جایز نیست دو تا مطلب بسنید تو چی مخوامید یک مطلب الان فقاه ما یک مطلب در باردن نماز در هره باسه ما میگیم وقتی کلام رسید دیگه دیگه و اصول و همه جا جا شده وقتی کلام رسید به مثل امام رضاقه همون لازو سلده فلحری این اشاره اون قاعده اصولی هم هست نه اشاره به نظر در ما مثلا مذبوره یعنی که در وقت اجتماعه همونه هیچ کتا از این اصولی ما به این رو باید تمسخ نکردیم این شما راحت باشیم ما به این به باید تمسخ کردیم من از کلام در محله خودش انصافا طبق قواعدی که ما داریم حد با اشمائیونه انصاف کسایی جواله به شما هم اشمائیونه اما با در نظر گرفتن اذهان روایات اهل بده انصاف امتناع یکی جمع این اختلافی که ما باهال داریم که آیا از این روایت دو تا در میاد یا یکی یک اگر دو تا درآمد مذهل لهذیذ یا سیاق حقیقت داره یا نه به نظر ما داره هم مدل داره چون این غیر از استفساره و غیر از واقعیته چرا چون این قاعده فقهی یعنی اون حکم عبارت اون از همون دلیل اصلا تغییر بدون دلیل حکمی میکنه تا یک تغییر قم نماز در حریم صحیح یعنی اجتماعی است تا قم نماز در حریم باطل الهی اجتماعی احتمال اینکه که از پیغمبر روایت بوده به ما نرسیده به آمه نرسیده امام زا فرموزه و اما هست. اما لسان روایتی نیست. در دان ما با مباد میان. ما وقتی جب به مزر نگاه میکنید لاس و صندفه حرید ازش دو سا درم بیانید. هم نماز در حرید باطله و هم امتناع درسته. در بحث اجتماع نه در بحث اصولی این از مسئله مصدر است بوش فیلتی بکنید این خیلی کار بردار نگاه به سادهی شکنید آیا جبه فقیهی در تحن روایات موثر یا نه و علا تقدیر تحصیل به حد ظهور میرسه یا نه و جز مدلول است یا مدلول سیاقی به حد ظهور میرسی یا نه به حد حجیت میرسی یا نه به ذهن ما در تمام موارد بنده البته با جمعه مسئله دقیقا برسی که <تصفيق> مسئله آقا علاوه